از این بالا می توانیم تهران را ببینیم. خیلی قشنگ است. بله، تهران خیلی بزرگ و زیبا است. به نظر تو چه چیزهایی در تهران جالب هستند؟ ساختمانها و برجهای بلند تهران برای من خیلی جالب است. زمانی که به ایران آمدم فکر نمی کردم در تهران ساختمانهای مدرن هم ببینم یعنی فکر می کردی ساختمانهای تهران همه قدیمی هستند؟ آره فکر می کردم که بیشتر خانه ها یک طبقه است و تهران شهر خیلی کوچکی است. وقتی من بچه بودم در یک خانه بزرگ یک طبقه زندگی میکردیم. الان در آنجا زندگی نمی کنید؟ نه. پدرم آن خانه زیبا و قدیمی را فروخت. الان در یک آپارتمان زندگی میکنیم. کدام را بیشتر دوست داری؟ خانه های قدیمی یا آپارتمان را؟ من آن خانه را بسیار دوست داشتم. در حیات آن با برادرهایم بازی می کردم. برجهای تهران خیلی مدرن و زیبا هستند. درست است، اما هنوز هم خانههای قدیمی را در کوچه ها می توانی ببینی.